اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین و آهرین المعصومین و لحظ دائمت علی دائم نجیبین اللهم افرم و جنگ و مشهرین و ارحمد رحمتکی و ارحمد رحمین از سلامی که قبل از وقت بحث اون عمر بن سعد عمر بن سعد ابن در کتاب وقعی در اولش اسمش کامل عمر البته خیلی شناخته نیست و اینجا مقروم مجیسی بیش از این نگفته که این عمر بن سعد نیست از کتاب نسل نموزاهه وقاستش دیوی ستو دوازده حضرت جباز وقاست نسل نموزاهه احتمالا سد مثلا کنجور چی مثلا تولادش باشه کسی که تقریبا حدود ایش از شهست سال بعد از مرگ عمر سعد دنیا آمده اصلا شهست سال بعد از مرگ عمر سعد ایشون با از عمر سعد نرقه کنه خب خیلی عجیب اصلا بعضی اصلا احتمال این که از ایشون هم نبوده از کس دیگه شده گفته بلالا. انصافا خیلی مطلب است که ایشون قدس الله و سره احتمال دادن که بعده و اسم ایشون هم به امین اسم عمر ابن سعد بن عبد السيد علی اشدی از اهل کوفه و در کتاب لسان میظاهر کلامه شیعی و بعید یعنی شیعه کینه توزیه به قبولش نکردم عرض کردم که این راجع به یک مطلب بود اون کتاب امامی گفتن یکی حدیثی که همین حدیث در فرض مفهومه دو تا دستا دیگری هستند تا مشخصه که هم تصحیح بشه راجع به برحال امامی رو که ما نه اسم کتاب رو شناختین نه اسم مؤلف و نه طریق مرحوم آیه به اصطلاح مرحوم آقای سید تابوس زون الله علیه بی خطا هر کدم در اثر گذشت زمان مثالی نوشتنی کتاب و اسناد داده حالا اگر مراد محمد نعیب عبد الله هم و محمد نجاح الله اسدی باشه چیزی حدود 300 سال بین ایشان و مردوس سر تاوز فاصله زمانی برای جعل کتاب این مقدار زمان خیلی هم زیاده شنگو کتاب میشه جعل و این دقت کنید حالا من الان نتیجه گیری نهاییشون رو میکنم بعدی آشناش عرض میکنم بعد از آمدن علوم اولوم ها یعنی یونانی ها در اون زمان به دنیای اسلام یک نوع برخورد به اصطلاح منفی و تند و یک نوع برخورد باز اون طرفی پیدا شد از کل ترجمه در اواخر قرن اول ساله هستات هشتاده توسط خالد نقه یزیده نماویه قازم نماویه توسط او به اصطلاح این ترجمه انجام گیره چون در شام بود نزدیک مناطب مسیحی نشین بود با کتاب هایی که به لغت لاتینی یا لغت یونانی یا سوریانی چون مسادر اولیه یکی از این سلاغت در از سنسکریت هم بودن و در اختیار اینا نبود اختیار آران هندی ها بود بیشتر سوریانی یا لاتینی یا یونانی این لغت بود و این مقداری هم حالا بیشتر کتاب های لاغوت و فتروین ها هم به لغت ابرانی بود که ماله به بود یعبودی لغت اصلی سوریانی هم کمتر بود شو سوریانی به استرااده زمان که در سوریه بود یه خط مقدس حساب میشد با که خط سوریانی بیشتر که مقدس بود تورات یهودی می که بعدها همین خط سوریانی با یک تغییرات مختصری شد خط کوفی ما خط کوفی قرارا داریم خط سوریانی اون خودش خط سوریانی است و از کرد اون خود این خط مشکلاتی داشت که سعی کردن بعدها این مشکلات برطرف بشه حالا باز اون بحث خطینه که و لذا هم از کرد تصادفی پیش که کسی که این خط برن بود از خط هیری بود که اصل استوریانی بود به مکه بود و اوائل مرعث پیغمبر این ادهی رو در مکه یاد داد این خط هیری رو که به ازها شد کوفی چون بردان پیغمبر کوفه ندود و لذا قرآن از اوائلی که میگن نوشته شد یا همین که هایی پیغمبر منصوبه همه با خط کوفی هسته بشینه این خطی الان هست مصحفای اولیه با خط کوفیه چون این خط کوفی چون خطی که در مکه و مکه که بودن مدینه هم مردمش امی بودن الا یهودی که با خط ابرانی می مکه هم با خاطر دو تمدن چون مکه ها می اهل مکه دو تجارت داشتن به یمن داشتن که جنوب بود زمستان ها مثل این وقت یمن می درستن سوریه می درستن مثلا به ایران تجار وقت در یمنی یه خطی بود به تقریبا میشه که حالا به یک محنایی حالا اینجا بود چیز شباهدی از خطشان میخیده سیخکی خطش اسم اون خط مصند بود اده از نوشته ها در مکه با خط مصند بود اده ایشان با خط سوریانی که خط مقدسی بود که در سوریا شام بود لیکن همین خط سوریانی به صورت برسا جدیدترش که خط هیری بود که بعدش کوفی این به مکه مد... رسید. راسه ده بیش از اصلا بعد بعد اون ايديا جامون مکه مثل معاویه و ابو چون خواهر ابو سفیان رو هم به زنیت گیر خود ابو سفیان خود عمر خود معاویه اینا چه سای که میگه ابن خلدون گفت ما و 9 19 نفر ختم میشه باز همین خطه مراد اینه این 11 19 نفر از این بهش خط هیری ل وا چون اوایل نزول قرانم بود و خط هیری به عنوان خط مقدس خود قرآن رو هم با همین خط می این کتابت قرآن ها هم با همین خط هیری شد که خط کوفی باشه حالا وارد اون بحث من نشد که بحث خاصی نشه دیگه از من خداست به هر حال این خاله آثار یونانی رو از وقت یونانی و لاتینی به استر ترجمه کرده عربی و این منشأ ورودش شد و در حقیقت منشه انتشار بعدها شد و خصوصا برای اولین بار چون واقعا عظمت اسلام و قدرت اسلام جوی بود که حالا خوفا رحبتا رحبتا ایمانا تسلیمان اعتقادا غیر اعتقاد در حال مقابل اسلام استادیه میکرد یا یعنی اولین استادیه ها در مقابل اسلام توسط زنادقه و ملاهده در کوفه شروع شد هز به بلاد تاریخی هم سال سبه 28. زمان امام ساده اینا به انتشار فلا کردن همه تا احزاب سکی داشتن گروه داشتن جماعت داشتن جمع میشدن حتی همدار کریم اول اوجا که این زمان و ملاحظه بود فرضش این فرد برای این که نشه کفر و الهاق و زنده در اسلام باید از راه مکه بشه ما تو کوفه بشیمیم که تو آدم اسلام اون, در اون زمان با اون غصر و اون زمان نشه دیدیم کفر رو. لذا با هو مکه نمی اومدن اعتقالا نه در جلو کردن میشه تضی می میگن وقت تعبیر رباتون مع جماعتی یه گروهی باشه یعنی گروهی بودن از کوفه برای نشر الحاد و زندقه به مکه می اومدن یا حج که با مردم صحبت میکنن برای نشر الحاد من این رو اومو سوده دیگه ارضه کردم از سال 128 این حرکت الحادی دیگه تقریبا رسمی شد وقتی این حرکت رسمی شد با اون معروب دنباد یکی جنگی گشتن بگه یک بحانه یک کمیش حرفایی مثلا یونانی های مقدارشن مثلا ایل، فیزیک و شیمی و که برداشتن به این تصور که این علوم، نجوم و اینها را در مقابل دین قرار بدن و به عنوان زیربنا و زمینساز کفل خودشون حالا داشتم فلسفه بود یونداشتن حرفای بسید بعدها حرفای اشراقی بود که یا و که همچنین اونا خودشون تازه هند گرفته بودن این هرغا هم در واقع را... ریشه‌هاش مالی اینجا در مقابل این حرکت بازی یه حرکت دیگری شروع شد من ان شاءالله بعد توضیح بیشترش ارائه میکنه این حرکت بیشتر مخصوصا از به اصطلاح ما اصطلاح موزیون یا اپوزیسیون یا از ما آرزه شروع شد این اومده مخاطب اون اسلام است که با علم مخالفه الا اسلام واقعی اصطلاح ما این با علم مخالفت نیست اینا آمدن سری کردن برای نشین اسلام یه ده از مطالب علمی رو به اسم خود اهمه نشه دادن در مقابل اون حرکت که اونا آبادن ترویج بکنن که مثلا فیزیک و شیمی و نجوم و هیئت و اینها اینها علوم کفری هستن اونجه کفرن اونجه به ارتدادن در مقابل حرکت دیگری درست شد که آمدن همین علوم رو به اخلی بهت نسبت دادن بارون اینکه اینو معارضه با نظام حاکم و اون اسلامی که با علم مخالفه این اسلام سیاسیت مثلا اسلامی که حاکمه اما اون اسلام واقعی که در اهل ویده در معارضه، در اپوزیسیون هست در مخالفین هست این با علم مخالف نیست این روایات رو که انسان نگاه میکنه زمینش اینجوریه لذا اینجور روایات به نظر ما یک مشکل داره و ممکنه حتی به لحاظ مثلا سعی کرده باشه در کتب یا محمده باشه ا خب مثلا ما الان چند تا رساله داریم یکی بر بختیشو بختیشو به اصطلاح نسبت داده شده شبیه همین که هم به رضا چون بهش معلوم نشدن به رضا بهش یکی دیگ هم رساله در درکون هم بهش معلوم نشده یعنی انسان یک چیز عجیبی نگاه کنه در طیف‌های مختلف خب این کتاب هم در اثر نسبت نسبت داده شده به خط قلوب بصریه این کتاب که از راه قلوب بصری به ما رسیده دقیق میکنی؟ حالا ترگیر سر من عرض کردم این به این صورت بوده یک نفر که فرسویم مثلا طبیع بوده مثلا چیزهایی که خیلی زننده نبوده اون مثلا معمون در مر بوده گفت اینجا وسط زنین او برای اثبات بکن این کابا خواهد داره از برسه تا مر بوده اینه مطلب بوده نبادم نمونتا شایی دورن یک دروغی هم در اولش گفته که این خیلی که ما وزا فرموندن حتی با آب تلا میرشتند و تکثیر کردند و خزانه ملوخ پشت یکی واقعی همش همه از سر تر تا تر ترش همه جلیه یکی واقعی هم. یه می یک نفری که حالا با آشنا بود چقدر هم آشنا بود اون بحث دیگری چون الان به لحاظ علمی ما می توانیم از یک حرکت از بالا نه با یک نظر از بالا یعنی دقیقاً باید الان کتاب کتابش که بررسی رو دریان دلخواهت تبدی تحلیل بکنیم یا روایت نجومی رو اینو شنیم کاملان تحلیل بکنیم این مشکل نداره چون این مستلهات مجموعی مثلا این سنبلو و سفینه این واضحه که این مستلهات که آمده شش شری آمده چه حسابی بوده بگذارم کنیم این همی آمده ام تا یک کسی باهی معلومات محدوده حالا من میخوام معلوماتش رو هم جمع یک کتابی رو نسبت میدازه میخواستن تق رو ترویج بکنن اینا عقیدشون این بوده حالا جان شخصیت هم نبودن تو جامعه هم برو نداشه ماستان بگم بابا با ای با دین منافات نداره تق با دین منافض نداره نجوم با دین منافات یقید بکنه مطلب چی بوده؟ این منافض نداره به اصطلاح امروزی ها این گونه قدوم طبیعتشون طبیعت خونسا توشون لازمی نق این مطلب بعدی که اون منجیم ازش لازینی در میاره یک منجیم ازش تویید در میاره اون بحث دیگریه این علمه علم توش لازینی نقابله این اصل مطلب به این صورت بود وقتی می آمدن یک کتابی رو در که مج... با معلوماتی که در اون زمان بوده یعنی مثلا کتاب تبردزا کاملا معلوماتش قابل تفکیشی کاملا چون کتاب تبی کتاب اون زمان بوده چه از ترجیمه یونانی بوده یا در دنیا عرب بوده در دنیا اسلام بوده واضحه این کتاب که و از کجا گرفته تقریبا واضحه حدود بحثت تبیشم تب چقدر واضحه این اگاه ها میبرمان هده این میاد شخصی میگه بله میگه به کیف به محمد بن جمهوره هم میگه این که ضعیفه یا یعنی دول مراسی لایوبالی مرون نجای در شهر حال حسن به محمد بن جمهوره نمیشه لایوبالی این در پیش این حسن محمد یا این کتاب رو من دیدم خیلی مشهور شاعر زاده نوشتن اون آقا هم که مبانیش یعنی این عصر یه مشکلی بود یک مبنایی بود که ما در تحمل حدیث نمیخواد حتما به نهر سما باشه به نهر رجاده باشه وصول باشه مشو اطمینان دلیل اطمینان یک آدان ساده لوخ خیلی زود پیدا می‌کنه مشکل نداره که یک آدان ساده و زود اطمینان پیدا می‌کنه من می‌دونم مال عزاد رضا بوده روش هم بوده. مثلا حالان رضا علیه السلام پیش مهمون بی این آقا میده این آقا ساده اعتماد به این طرف میکنه میاره نقلش میکنه به این یواسه ها تو اصانیز مبارد میشه این صدر ورود اصانیز به این صورته مثلا این دو تا روایه هست اگر درقت بکنید اولا اسم بنی فضا توش آمده یکیش که بقدر از راه قومه یکیش هم از راه قوم و احمد بن محمد بن سعید مشکل نداره ممکن واقعا فسیل برد محمد بن خطاب واسطی داریم که اصلا نمیشونستیم حماد عزوی داریم اینا اصلا خوب دقت بخونیم ممکن است که اصلا واقعی هم نداشته این محمد بن خطاب واسطی ممکنه حتی وجود خارجی نداشته باشه خب یکی چیزی که میاد حدیث مثلا دو صدوشاطی یا یک کتاب رو جعل میکنه، شاطرشون جعل میکنه چون شذرجاله. من چرا رو عرض کردم. بعضی از اسانید رو هم ندیدیم اینکه مجهولن. مثلا احتمالاً ساختگی باشن. این که با مثلا ضعیف بحث ضعف رو مطرح نکنیم، بحث ساختگی جعل. این دو تا حدیث فوق العاده به هم نزدیک کرد دو تا حدیث یک مضمونم هم داره. مضمون دو تا حدیث این است که علم نجوم نفسه حقه. اینه. منافات بازی نداره این علم منافات باست مطلب درست شما اما مطلب مطلب درستیه بله تو این حدیث یک نکته دیگری هم هست که دقت بکنید امام میفرماید شما با علم نجوم می توانید حتی درستین به یک سبزی کوچیکی که جنازه دون تشخیص بدی این که ممکنه الان علم قبول نکنه دقت بکنید امام می‌گه شما با علم نجوم می‌تونید حتی یک نه که تو زاره او رو تشخیص بدید اون نهی فغی می‌شه تشخیص اگر این علم این مقدار ظاهری که الان ما در علوم داریم چون اینو درسته تاثیر اخلاق میان نجوم به طور کلی اینکه اخلاق سره حتی چیزهایی که از به شما میلیون ها سال نوری با ما فاصله داره تاثیر رو که روی زمین ملاحظه کرده. این هست درسته اینو قبول دارم اما این تاثیر تا اینجا باشه دیگه عوامل داخلی کره زمین خود خاک خود جاش اینا دیگه بی اثر باشه تمام اثر داره روح عوالم علمی این روشن میزن داره علمی الان این نیست مگر اینکه که که امام در دیگه داره لا یعنما دالکه الا من علم موالی دل خلق کله هم این ببین موالی در خلق نه بشر خلقه یعنی موالی دل چون خب الان دیگه تقریبا ثابت شدهن که زمین از خورشید جدا شده خورشید یعنی ما بتونیم ما اگر بخویم هر الان زمین و هر ثانیه زوایایش بشناسیم باید برگردیم بیایم به اون حالتی در کُنون هم سلسله و اونجا برمیگرده یعنی تمام این خطااتی که الان در زمین هست به این معنا در افلاق وجود داره به این معنا چون از خورشید جدا شد جدا, جدا, جدا, جدا افلاک تمام این حقایقی که در زمین هست مثل وجود تفصیلی است نسبت به وجود اجمالی که اول داشتن مگر به این معنا مراد باشه خوب دقت بکنید به این معنا و الا این مقدار که مثلا بگیم که پس عجب، عجب، در عجبه قصد نه در میزار هم ممکن با علم نجوم پس باور این روایت مبارکه باشه که به لحاظ سندی اشخاب داره ولی خود مطلبش حقه اصلا صحیح استار کنه با این روایات اسما نه ولی روایت نمیشه اثبات اجمالا در این که اهل بیت علیهم السلام ببین نجوع به این علوم اعتقاد داشتن اینو میشه فهمید روایت که ما از اهل بیت در مورد مثلا از اون چه درنشود ممن عبارات مختلف موارد مختلف این رو میشه فهمید اما حالا این روایت واحده یا این روایت رو بفهمید و ازش جر بیاریم که مثلا علم نجوم حق به این معنا و تا این درجه که توی این ویواز آماده اینا شاید خیلی روشن نباشه که نشالا بعد ارز کرد. در بباید دیگری که داریم باز این رو هم مرهوم شیخ کلیمی قدرسالله سره در کتاب روزه نقل فرموده ان محمد نیحیان چون من بنا گذاشتم باید ترتیب وسائل بخونم این حدیث در کتاب وسائل از این بابی که من کردم این شماره است این حدیث ها از طریق قاعده مرحوم به اصطلاح آیه مرحوم بهار از کافی نقل در کتاب بهار به حساب شماره که در بهار داره چون بهار کامل نارم که مرحوم سال さん در اینجا نقل سنحت کرده که این ببایت هم که همچون که ارز کردم، باز هم مرحوم بهار در کتاب روزه نعقل کرده که باز هم روشن نیست ازش این نکته ای راجع به اون حدیث صادق باز ارز بکنه چون گفت که محمد ابن ایسا محمد ابن یهیای اخو مقلس انه همماد ابن عثمان چون بقیه عبارت و مرحوم سیدن طاووس به قدس روح نیاوردن من دیگه الان نمیدونم چی بوده بقیه اگر مراد ایشون این باشه که این روایت رو سیدن طاووس اگر مرادش خود هممادرن عثمان از امام نقل میکنه که خیلی بریده شباید مرادش این باشه که هممادرن عثمان از کتاب از عبدالرحمن امی سیابه یا سیابه نرقی مرادش این باشه. ولی که در کتب عربعه که ما الان داریم کتابی که الان ما داریم کتاب عربعه روایت حماد ابن عثمان از عبدالرحمن ابن سیابه فعلا دست ما نیست یعنی اگر جای دیگه باشه ولی الان دست ما نیست این راجبی کجای در کافی دیدم بل آخرهای بحث بارده در کتاب نجوم درست نیجوم کتاب رسائه به ب... صفحه دیگه سه از این چاپلن پنجه و یک شماره 58. من محمد بن یحییا که ایشان باشه که کاملا از اجلاس، ان سلامت ابن خطاب براوستانی براوستان از محلات بون بوده طرف به نظر میادی که بعد از آذر به طرف هایی همی جدیه کاشان اینجا بودیم البراقستانی ایشون تضعیب شده و جزو خط غلوب حساب شده من رو کردم در مذاهب فاصله خط غلوب تو قوم بودن و کراهن عرض کردگیر باقت تکرار بکنم ما فعلا دو خط غلوب رو جات عقایبشون خیلی کار نداریم نه که کار نداریم فعلا که بحثای حدیث کار نداریم ما روی خ گلو و بزرگان خط قلو، حال از اون راست شدی تا دست روش بیشتر کار رو بخش و بخش به اصطلاح مسادونه ها و فراص علمی اون میرا علمی. ما حرف اون اینه که خط قلو ها هم هر جی که بوده به لحاظ میراث علمی ضعیفه، ضعیف این معنا مراعات نمیش. مثلا به نحه قرار داشت که در نهو بوده نه وقت اصلا نمیگفتن یا ان میگفتن احتمال این بود صادق بودن یا الان خاصی، چیزی رو خاصی داشتن لذا باشه میراث های علمی خط و قول بغلوب... و علل بل... به باعث میگه ما می خوام بفهمیم این چی کار خط و نماز می‌خونیم ما می خوام ببینیم این عادل باشن بونی که الان ما روش کار داریم توی بحث حدیث شناسی ما میراث های علمی بود. اونیشی داریم واضح هست با مراجعه خط و قلم خصوصا در میراثهای عیدی ضعیفند ضعیف به معنای اینکه دو هویت به شبهه هاجه تسامح دارند که به اون نجاشی میگن تسامح دارن. اون دیگر تقرر ضرورت لازم چه یک یا فعل نهتی چه غیری نهتی چه خیلی این ذرافت ها رو مراعات نمی کنه خیلی موزاافت های سنتی سلوری نسخ شناسی رو مراعات نمی کنه علایوهار سلامت و خطا از خط قلوبه و باز مرهوم کلونی ازدتون من اصحاب ما از سهل ابن زیاد این همی فیدیه از خط قلوب هر دو اینه که ما میگیم خط قلوب یعنی مثلا فرصی رواید مال علی بن حسان نیست این باز نسال یه نسخه در بازار هست و علی بن حسان خیلی اکتفاد این مطمئن همه علی ابن هست این مراد ما و در این نسخه کم و زیاد شده اینه یه نحسانی ای که هاشه ن یکی واسط است که سقر ظاهران اینجا واسطی باشه, باشه. ان علیه نعفیه از زیاد بند این علیه اینجا مجبورن علیه نحسان واسطی اگر باشه سقر اگر اون باشه ان معلم نخونه معلم نخونه ایسان که خب محل اپسلاس محل اشتاله مرمون اجرسی فقط زعیف رو جدن باید اول علیشان دیگه این جدیت نباشه به هر حال این روایت دو تا جا خط و داره این مشکلش اینه و خط و از کدا مشکل اصلیش رو لازم فرهندی بحث کنیم بذار شما مثلا ممکن میگید لازم عهادی فلان حذیشون قلم نیست اون بحث دیگه اصلا بحث عهادی نمیشه به لحاظ بحث سیاسی هم وارد نمیشیم چون خط و یک لوازمی سیاسی هم بشه احتمالاً از خط و قلمز بودن به اسم شما شویی ها کسی که در درک دعو در شدید عرب و عجب در رحمت راخدیده احتمالا از دچار از خط قولوون شده بوده. اشی احتمالا دچار خط قولوون و اصلاح ما جزء نگاههای اصولگرا به این موزیها یا به بیان دیگر نسبت به خطهای انقلابی و تند بودن متن یا مصالحانه قابل به جام مصالحانه بوده. این بحثهای سیاسی هست. اون بحث سیاسی رو فعلا الان مطرح نمی‌کنید. بحث عبادی رو فعلا مطرح نمی‌کنید. اون رو ما بیشتر کیه حدیث فیناسی با اون نیاز داریم شنافت خط قلوم به لحاظ میراس های علمی این نقطه به لحاظ میراس های علمی به طول کنی خط قلوم زریفه به طول کنی درست درده و بحث دیگه زعفش هم نه به معنی کذبه اشتباه نشه زعف به معنی کذبی همیشه آقای همان دیگه مسلم گردن اگه نجاشی در حقی کسی بگه زریفه همین میگن تضعیفه اما اگر به زعیفون فله حدیث ضعیف نیست زعیفون چون حدیث ضعیف نیست یعنی در شناخت حدیث مبانی حدیثی ایشان زعیفه این مورد خط قلوبه این متاسفانه دو سه جاش از این خط قلوب داره که عرض کردم خط قلمه البته نمیخازم بگم خط قلمه پیش ما یه نوع معارض سیاسی هم بودن اپوزیسیون سیاسی هم بودن این خط خود معللمون خودشان خاطر شهید شد به خاطر خط سیاسی که باشه قابل سرف ابو عبدالله عليه السلام هر نجوم احقون هي قال نه ان الله عز وجل بعث المشير الى الارض في سوره رجيم خب اینو نمیفهمید هاله که بحثم اشتباه نکرده این این جور تفسیر کردن نجوم یعنی یک تفسیر غیبی که با هیچ یک از زوابت نه قدیم نه جدید مثلا این سفر مشتری ما دور که این کوچیک هم نمیذارن میگن حالا کوچیک شما فی سوره رجیم فاخذ رجیم فقال عجب تعلمه النجوم نه انه قد بلد فقال بعد هذه صاحبيشون خیلی مفهوم عجیبه قلی می‌داد یه خلاصه‌شونه که یه که از عجب بود به داد بعدش پرسید یاد بیاره گفت بله خب ببین مثلا مریخ داره یادش نمیگفت بله به مشریف ولی اصلاً نمی‌شنوه نمی‌خامه گفت نه سو یاد نگرفت بعد رفت نصف هندی پیدا کرد او یاد داد بعدش مثلا مریخ خودت گفت به اون گفت مشریف گفت خودتینه بعد گفت گفت خب پس تو درست بفید. بله قاله انه حسابی لیدون علا انکه انتر مشتری و برسه علمه او اهلهو فعله علمه نام علم نجوم بیشه از در هنده ارز کرده اینا چون هند متعانه علم نجوم بیشه چینیش بیشه از هنده تمدن هایی که نجوم داشتن بابل بوده مصر بوده یونان بوده هند و چین اینا ریش در تمدن در باب فرهنگ نجوم هست حالا یه این روایت کاملا واضحه که سعی کرده ریشای نجوم رو از هند پیدا بکنه یعنی متحسر بوده این چیزی شبیه همین از آیا و اصافی رو خیلی عجیب غریب. اینا رو ما میبینیم مثلا فلسون فلسون ببینم با مثال سلامت ابن یا سهل ابن زیاد جعل کردن دروغ گفتن نه اعتماد الامالایی هم بقیل اعتماده اشتباه نشد مضمون کاملا غریبه، کاملا، غیر قابل قبوله و مرحوم صاحب جواهر هم روی همون قاعده که داره با سرمه عقول و یعطی وجهور این هم خیلی عجیب است عقول و یعطی وجهور این وجهور هم عرض کرده مرحوم صاحب وسائل در آخر حدیث دوازدهم داره این یک ریشه از علمه روایت دیگری هست شماره چهار این روایت را هم مرحوم کلینی شماره چهار از باب کتاب وسائل اون حدیث شماره چهار به اصطلاح مرحوم شیخ کلینی قدس الله سره اون را هم مثل احادیث قبلی که از باز در کتاب جنابه کتاب به اسطلاح روزه نقرست کرده اون حدیث رو. اون حدیث این توریال من بودن از این کتاب مرمون از آهای مرمون به هار در زیر این حدیث کلام خوندن یه توضیحاتی داده که آن که خودشون که معنی کرده که مراد صورت رجل مراد چیه به نظر من توجیه این مطالب هم یک کمی یه جوری آدم توضیحش هم که می خرابی برای خیلی توضیح که به طریق آوران خرابی داره این حدیث رو هم از این کتاب آقای بله ایشون شماره یه 23 داشت دادن در اینجا بله ایشون فرمان علی ابن ابراهیم من ابی من ابن ابی اومد ارز کردن طبق شواهدی که ما داریم به لحاظ سندیشون قبول نکردن چون روزا بردن اما تا اینجا خوبه ابن ابی و این که میگه علی بن نبی حنبل از همین تاریخ این روایته سیر تاریخیشه این مرحوم ابراهیم هاشم که از اراق و ایران اومد کتاب‌های مربوطه من, من جمله از کتاب نوادر ابن ابی عمر نوادر ابن ابی عمر به طور کلی زیاد ابن ابی کتاب معروفش نواده که یکی تون هم مرموقه تقی صدور در تقی میگه و شیواد ابن ابی به دیبی به خطی مثلا به 3 چیش جز بوده نواده یک شرکی داره جاییه و هر حال شواهد ما کافیست که این کتاب از سال نبی عمر لیکن ابن عبی عمر ان جمیل ابن صالح ایشان سقه هم من اخبره راجه از این سالح یه بحثی هست که جاش اینجا نیست هم من اخبره رو ارسال داره و عرض کردم از از آن گفتن که اون عباط الله یعنی برای ارسال الله انسقه شامل این میشه چون ارسال توش هست و از آن گف خبتن اگر ارسال از خود ابن عبی باشه این نمیگیده چون لا یورسه اینجا که او ارسال نکده ارسال رو جمیل از مساله من توضیح هرز کردم اون عبارت لا یورسه و انسره حالا قیل از اون عبارت اصلا با اون واقعیت نوشتارهای ابن عبی عمر رو حساب کرد اون خیلی بقول ما ها ملا نقطی و عبارت حساب نکنیم. خیلی همچی دقیقه عبارتی حساب اون اون عبارت اینه. اگر مراد این باشه که مرحوم نجاشی ظاهر عبادتی میگن ابن عبی عمر کتابهاش برای اثر این که زیر خواه کردن را زیر زمین گذاشتن خواه پشتردی خواه پشتردی کتابها ارسال پیدا کرده و اصحاب ما بر اون روایات اعتماد اگر نکته این باشه چه ارسال از ابن عبی عمر باشه چه از برد باشه فهمان میکنه مراد این بوده این کتاب کتاب ابن که اعتماد میکنه. حالا ارسال خودش باشه یعنی آقایان بحث و رجایی گرفتن عبارات شیخ رو اما اگر اون عبارت فهرستی معنا رو به زمین عبارات نجاشی معناش اینه که هایی که در کتاب روایت النبی وام النز مضر نیست دقت بکنید دنبال این عبارت نگردید یولای ورسللا یعنی ارسال حالا خودش باشه نه ارسال دیگری اصلا دنبال این نگردید ارسال حالا خودش و دیگری و چه شو مثلا واضح شد مراد نجاشی اینه که وقتی نبی عمر تو نبی عمر به خاطر اینکه شیعه راهنمایی بکنه قبول نکرد زندان کردن سر 10 هزار دینار میذارن 10000 همان خودش مصادره کردن خواهرش و مادرش و دخترش چیکاروار زیر زمین قائل شدن که حساب دیوانلکی نگیرن در نتیجه وضعیت خیلی خراب شده خاص آب نا اثر کرده اون وقت خود ایشان چون شیعه شناس بود حدیث شناس بود، محدث بود دیگه از همون نسخه موجود تحویز میکنه حالا تو اینجا بوده امن ام اخبره او این امن ام اخبره او لزوما ممکن است مثلا اینجور باشه بگیم خود اسم بوده ایشون نشه بس رو بخونه اسمو اسمو خونده احتیاط کرد لزوما امن اخبره بود. پس این ارسال تاریه این ارسال بعد از اینکه به این نسخه طرف رسید این ارسال از اونجا پیدا شد من چه ارسال امن ام اخبره او این ارسال به, به ایحام واسه نه به حس واسه این ارسال منشه اش این اگر این طور ما عبارت از حال رو بفهمی عبارت شیخ ظاهر شجالی عبارت معلوم نجاشی ظاهرش فهرستی اگر اینجور بفهمی مرسل در حدیث نبی همه قبول میشه قابل قبوله کار به ارسال خودش نداری بعد الله عليه السلام آل سوئل عن فقال ما الا اهل بيت من العرب و, و بيت من الهند این در اون نتیجه نهاییش اون حدیثی که قبل خوندی خیلی نزدیکه با اون نتیجه نهاییش خیلی نه مورد اهل بیت من العراق مورد بيت نبوذاته اهل بیت من الهند بهمون که ازشون از کهی انصافا هر از این نیست که این رو قبول هست یا نه فرسیل یک نخلی که سوال کرده امام به اندازه عقل او جواب داده باشه به شواهد ها حاکیست که شاید تمدن چیگی در این جب و قبیمتر در کتاب فرج المهمون مرغون سیدن طابوس رحمه الله اینطور داره روینا ها در حدیث به اسنادی هی الا ابن, ب... رو... ابن عبیق عمر من اصلی از چه سه مرادیشان از اصل در اینجا اون نسخه خود کتاب ابن نبی اومده. نه اینکه اینجا اصل در مقابل مثلا مسنف و کتاب اینها و ارس کرد شواهد هم بینه. و کتاب ابن نبی ها موجود بوده نوادر ابن نبی که شیش جلی بوده مدت‌ها ها موجود بوده و شواهد هم کافی است که این کتاب در اختیار مرموم سرمتابوس بوده پس اضافه بر مغل کلینی سه تاوس هم کسی معرفت فراج المحوم هست این همین طوره اگر این باشه احتمالا دو تا واسفر هست شد در عصیلش اینجا عبدالله نوشید. نبیدون عمر منه هست کنی این تصلافه این کتاب فراج المحوم هست تو گم شده هی. به نقل از دیگران نقل میکنن علایه حاله بعد ایشون مرحوم بهار هم خلافت صاحب به اصطلاح سیرین سیرم طاووس میگه بلا ادل الله را جواز نظر فی بر عمل به بر انا خلاف فهم و عذر لان علم اکثر خلفی ناقصه فیکون حکم به قولا بغیر اخ شبیه تخوجی که ان شاء الله بعد سایر که مرحوم به اصطلاح صاحب وسائل هم اینطور نعر کرده راجع به ابن عبی عمر خیلی این حدیثی الان اینجا خوندیم چونم دیگر نه حدیث ابن عبی عمر در اینجا خونده شد و متاسفانه مرحوم شیخ هور حدیث دیگری از ایشون نیبرده از ابن عبی عمر یه حدیث دیگری از ابن عبی عمر در فقیر موجوده که در اینجا به اصطلاح مرحوم کلینی نقل کرده در کتاب فقیر عبارت فقیه اینه و رو رویان ابن عبی عمر انهو قال شماره شست در این باق شماره شست انبسیت تعبیر به رویه داره صفحه 272 ایشون تعبیر به رویه داره که از کرد این کلارم این به اصطلاح رویه های ایشان در کتاب صدوخ یک مقداری دلالت بر مشکل میکنه حالا این از باب فایده عرض بکنم در این کتاب مرحوم شهید نیده بودم تازه پریشبم پیدا کردم در کتاب مرحوم به اصطلاح آقای مرموم بهار حالا من چه آخر وقتم هست در کتاب بهار یه عبارتی رو از صدوق نرمی میکنه به رویه میگه و این مشکل به زعفه اینجا داریشون به این مناسبه تعبیر میکنه که چون مرحوم بهار به طور مرحوم تغییر به صورت رویه گفته این علامت زعف حدیثه حالا من باید پیدش نکنم اینجوم یه تغییر داره که علامت زعف حدیثه حال روایت اینه حالا کن تا امورو فالنجوم و اعرف ها و اعرف و تاله فیقونی من داله که شیعون فشکوت داله که لعب الحسن جعفر علیه السلام قال اذا وقع في نفس الكشي هون فتصد در علا اول المسكين ثمغه فان الله عز وجل يتاع این عبارت نشون میده که مرحوم ابن ابي خودش در نجوم کار کرده و میتونسه استخراج کنه مثلا استخراج مگه خوب نیست بعد مرحوم سید این رو عتیر گفته و روین ها در حدیث ایزه من کتاب تجمل ان محمد ابن اوزینه علی این کتاب سجمول هست چند سا هست شاد در درقصای آیده ارزم ان ابن ابی اومه اینطور. و ذکر نحوه اون مقاب از کلم مرمون سیر در کتاب فرض و برای اثبات حقانیت علمون نجوب اسم یک عدد بزرگان رو برده که اینها خودشون نجوب یاد گرفتند ایشون این یوری ثم قال ولولا محمد في و این چه حرام, حرام بود من این استظهار مرحوم شیخ سید رضی سید از عرض کردم، شکییشم بیو برسید در عکس نوشته. حالا این مطلب اینقدر عجیبه که خود مرحوم بله مرحوم امامی مجلسی ایشون حمله کرده. اقول رواهابر خبر البرقی و المحاسن عن ابن ابی عمر عن ابن عزنه عن سفیان نعمه. اصلا این سند حدیث این صورته. درد کردیم این از محاسنشون میگه کما مرد نرد بود بعد فزهر انل آرف به نجون نمی کند نمی امری اون سفیان نمی امر آرف به نجون بوده بل رجلا رجلا مجبول الها درد کردیم بل رجلا مجبول الها و لقا استقوم نسخ فقید مثلا از نسخ فقید شخصی واقع شده و نسله فر جوابو یذل لالهتنه لن ما كان تلیه بهابل علم مکان فی نفسی من لاله که شما ذهنش بگین علم خوب نیست که کلزا امام این سوال میکنه بله و بعدش ابن ابی عمر یاد گرفته بعد ناراحت شده از اون سوال بعدش میگه برمی که ابن ابی عمر معصوم است و این الله معصوم است تا یکون فعل او حجت ان که شما از این روایت به یک نسخه از کتاب اینطور استدلال میکنیم. و عجب از او که مرحوم سرتاغوس این روایت رو از کتاب تجمل نقل از محمد بن وزینه اهل ناریومه حالا ما محمد بن نداریم عمر بن داریم گفته شده اسمش محمد بن عمر وزینه است این گفته شده اما محمد وزینه نداریم خودم سالما اعتقاد این بوست چون اسم محمد بعد دارید شما از کتاب کشید رفتر اواز کشید روشنیسه اشتباه این راجعه دیگیم دو این که اصلا ما نداریم که ابن عزینه از ابن عبی عمر نهار بکنه هم به ابن عبی عمر از ابن عزینه نعبون. اصلا ما همونی که به اصطلاح در کتاب محاسن آمده اونی که در محاسن آمده ابن نبی عمر این ابن عزینه این درسته حالا هم به قصه چیه؟ آیانی میسد کژان طاووس اگه سنکی دنبال حجره خبر می আসেন چی گفتن گفتن خیلی ولاعش میگوش ما سه تا مستند داریم سه تا سند داره هر حجیت خبر همه درسته خلاص اینجوریه نریما گفت بال منه یه جا از سوفیاه نومر نقل کرده یه جا مثلا ابن مودینه همینا قبول می‌کنیم این یک راهی بوده که من چند بار توزییدم راهی اینه که نه با مقایسه روایا ما میفهمیم یکیش درسته بقیهش خرابی داره و به عبارت اخراغ در حقیقت ما سه نسخه از این کتاب داریم از این ربایت داریم یه نسخه در اختیار محروم صدوق بوده اینطور بوده ابن عدیامر قال بله كنت تو انظور بین یک نسخه یه نسخه در اختیار محاصل بوده چون که سه ماهاته اینجا بوده ابن عبی عمر ابن عزینه این صحبیان عمر. عمر. عمر. این دو نسخه یه نسخه در کتاب تجمع بوده که سهی اینجا بوده در شهر کرده. در اون نسخه محمد ابن عزینه راهی به که ما رستیم میریم اینه پس در حقیقت سه نسخه از کتاب ابن عبی عمر اون از ما باید ارضیانی نسخ رو بکنیم محاسن ظاهرن قبول کرده ابن عبی اومر انه نوزیدن صفیانه دو اومر صدوخ ظاهرن قبول نکرده نسخه شو گفته رو ابن عبی عمیر. ما رویه رو تضعیف نمیگیریم حتایه به نسخه میگیریم اگر در نسخه مشهور بود میگو رویه ابن عبی عمیر. در بعضی از نسخهشون گیده ابن عبی اومر کنته به نسخه. و ما توضیح عرض کردیم نسخ ابن عبی یک مشکل داره سخت توش بوده یا باران یا خاک شده سخت ایجاد کرده ولی اذا خود بردان و هم با احتیاط گفته رو یه یعنی ابن عبی اومر پس ما سه نسخه از ابن عبی اومر داریم الان که در سال 1432 هستی اگر بخوایم دورا دور بکنیم از سه نسخه محاسد میدونیم از سه رو نسخه محاسد. ابن عبی عمر ابن عزینه این صحب یاد ابن عمر این رو اصحب میگینی نه کتاب سجمهور رو درست میدونی نه اون چی رو که در اختیار مرموم صدوق بوده درست میدونی اون که اصحبه نظر ما الان کتاب محاصره و این همون کاریش که مرموم صاحب بهار انجام میجار بودن و سالالله پس استفاده که ابن عبی عمر این عجون بوده و ماهر بود و چیم بوده از این مرموم بسیار خیلی